محصود الله و محصوبی و برای صحت روایات کتب اصخاب ما نروح هموندن صحت معنای اعتبار نه صحت از بذار من شباطه بیوردن از محبوم شهر باعری و که شده در آخر در آخر که تفاقه بخش دیروز هموند ازده بخش بایشان هستیم یک عبارتی برد و جنسد را کردن که این پراسیه ترمیان چیه موجود بوده با زمان امدامه مندرس شده از به این لذا احتمال در اون قرآنه نمی شود این خلاصه اشتار ممنون اصال به وسائل ممنون شکل پر جواب بزنجه اینی که آیا محلش است که همون روزی که امدامه این استلاحات رو بوداشت همون روز این قرائن مزمه که به مندرس شد نه روز قبلش نهی روز در همون چاره. یه جوابی اینجوری که یه تکار شد این جواب که به شوقی عشقا عبوضان از و از شنر مرگون صاحب و بود که از این جواب رو مطرح رو ترمانی که اصلا خواستان مخون نداردن این همون روز آبوز قبلش نبوزه و صاحب روزش نبود و هر حال این مجرح چون به شوقی عشقا هر این مقدار اجماعی هست بکنید ای کاش این جواب رو اصلاح که این مطلبی رو که نهاری کرده از اون آقا و بعد جواب داده خودی این مطلبی این از قابل تعمله یعنی نه تقریب رو محبوم شیفه باره از اون آقا کامل ابرده و جواب که رو پیناتزه و نه جواب از من توزیهم از فرم سابقه بره. اون اشکال رو اگر به این صورت تقریب بکنیم که من صورت توضیحاتش رو ارز کردم در وقتی که علامه به استداغ مشکول تحریر روایات ما شد در مواقع اندامه راهی سعود تفصیل کرده و راهی رکیالی نبود این توضیحاتش رو من صورت رو بردم توضیح اشمالیشی نهرز کردیم فقه در دنیایی اسلام از همون ایمه های قرن اول شروع شد استدباه رو به اصطلاح استدباه رو استدباه رو نه دنیا و اون فقه روی دو سه محور بود یکیش موضوعاتی بود که حکم نداشت که این صحابه زیاد باش برخورد کردن اصل مطلب موضوعات فراغانی بود که حکم نداشتا در حدود بود دقیقه حدود بود در مسائل خب مثلا یه مسائل نسبتا روشن بود از این خرید و بروش شواب مثلا, مثلا روشن بود حرام اما انگور رو به روشن بکر این باید شواب دسته انگور روشن بکر یه میگاه چرمی که بگاه شد این فروع روشن هم بود لذا رد کرد یکی یعنی از یعنی در در این در زمان صحابه این شروع شد اون این بود که ما موضوعات جلیبی باشو برو شدن که در شریعت به اصطلاع در کتاب سنت کف نو نیامده بود و این موضوعات از همون عهد صحابه شده همتا شراب احتمالی بود که عهد شراب در و در سنت نیامده در زمان آنه داماد داشت شوهر خاهل شده شوهر کرده بود میکنم نم یک آیه هم نداره که شوهر شد که امیر المومنی بحثت رو داره با خواهده قیاس به فرماد حد شد و شراب هشتا تا زیان هست. این طور پس چندبار است شما از این موضوعات بگیریم تا به بعد مثال های در اینجا قیاس آوردن یا مثلا خانومی که از دم پاک شده اما این خوصه نکرده تدهی قارده استثال و قرآن قرآن قرآن قرآن از دیگر می گفتن نمی شد یعنی مسائل یکی دوتا نبود مسائل فراغانی از اون مسائل روزمره این طاقل این یک قسمت شد یک قسمت هم نوعه هزاقون ها و طاقل ها بود یکی از مسائل فریمونه که این شاید خودش رو زیادش رو خواهی که از امور این هر ریش هم بر از زمان یه باشه این مسئله پیشان خود مثل چون زمان بیهنبر بیهنبر 50 سال که فاصل شد به یعنی به انبر کلام به انبر موجود چیه فسن پنجه که فاصله شد افتیارت به واسه پیدا کرد این رو گفت من از خلا نیشیزم از خلاه که بکنم در دیگری در مسئله فقط هم پیش پیشانه قیل از در نفری ک خب اتونه حواله کار هم بود یا منابه زیاد نبود تقریبا قبول میکردن کند ها سالهای بوده 130 سال و 140 اصلا از کار در سال سال عمره در به فکر افتاسته سنن رو تبین بکنه یعنی این کار شد اصلا اصلا اصلا اصلا تکرار بکنن در زمان خود او همین اون نوعه مطرح هم که سنن رو تبین بکنی یعنی سنن حضور خب قبول نکرد و توضیحات شرکتر این شام عمرشو زنیتی بود جلوزی به این بارن این مثل خوابی مثلا فرس که سالی بود ساله این تر خونزش تا جلیان زمان عمرش است این زمان سنن تدلیم می‌شد. شد خوابی نبایی در سنن دا ما دیگه احتیاج به خبر وارد نداشتیم چون خود ساقه چند را یکی هایت لاقل به وارد در سال سب آماره نمازد مدینه که روز توبزی بزنه توشاره داشت ها یه مقدار نوشتارهایی در دست مردم بود در صحابه هایی یعنی خاندان صحابه که این نوشتارها جمعه آقایی کنن و اونها سونه از گهنبر مزرپن بکنن همینجه مزر شدن به لفت بعدی از افرادیش رو به دانش کشته شد این به سر پا نگره که یک محارب نبوی عزیز در سال سر خب اما این امر واقعی بود که پا میگه به دیگه شروع شد اون وقت در این سالها، سال ساله های صدر یه باشه هاش به این هم دنیا اطلاع خود وقت من از رسمن بارد شد که توزیحاتش هم سابرن رسه خب فرق تفضیی از این فرق بارد شد مسائل رجالی و هدیسی از این فرق شد خود اون فروه فرقی قبلی لذا ترمان دوم دنیای در فرق و یکی از کارهایی که در برز دوم یه شروع شد شو. بخش رجال و هدیس و این که میکنه کنه سره هست نیست و اولین نوشتی که میشه گفت با آنگانش کنند جمع آدنی شد که تا محطف ماله در زمان اولمان سالت سال پنجام مثلا در دو سالت از شهادت امام سالت آنگان سال و از هم زمان هم تبلیجم مسئله رجال شد هموهنی تر اون و کرده بود از مزار مل. و خود مالک حقیق بزرگاری بود و در محینه بود و قرد واسده داشت خب خیلی عسانی از نظر او راحتتر بود در بین نقصه سنن معتبر از محتمل در محتمل مالکه ادهی شد مالک از نافه ناف قرام عبدالله نومده از نافه از عبدالله عمر یکی دیگه واسده رسول الله نهبون میکنه این رده احسان هستانه اول از سواله توی دارن چرا؟, چرا مدینه, مدینه رسول الله لطفاً مالک از وقتی چشم باز کرده یا صحابه رو دیده یا نبی صحابه رو دیده صحابه که ندیده یا بچهای های بذار دیده یا نبیه ها شانی دیده بعد هم اینکه و چون حسانی رو هم از مدینه گرفته صحابه زیادی حسانی دو میکنه با کنه ب خب تبنیجا محسوسا در اثر درو شهرها من از کلوپه و بسرده بگیمی تا مثلا خراسان و مصر و بگیم شرشان و این فرد ویسای اماکر بریده هم در نظر از سالهای حدود صدا پنجان دیگه اهل سنن به فکر رجالی افتادن این سقه هست و و تدریجا هم بحث های اصولیی که زیر بقیه از بود که دیگه تغییر هم بشه گفت ساله مثلا دیویز هم اصولش مدربت شد و هم بحث های شد و اختلافات هم پیدا شد دیگه اختلافات بخصمی هم پیدا شد پس به این که از درواه های اصولی در میان نهل سنت دعوای خیلی فکریتنگی بین شافیه ها و هنفیه ه بین هنفی ها و عملی ها چون همولی ها به این زنبال ربایی هستند ما و هنفی ها دنبال ربایی هستند شبیه اصولیه چون رو شدندن که این دوتا با همدیگه اصلا اگه همدیگه از موارد به ربایی مرسل عمل کرده که در فکر هم گذار گذارت آدم شابیه در اونید آور و ساله صاحب کرده که حدی موا بسیار مفصلی فصلی از باجه خبر و شژری در بررسال خودشون. اینه که این مواث توان خیلی زود در میان ففعل صنددن هم جا میه و هم تاکسیر گذار باشه، تاثیر گذاری این موارد سوخ نه برناف اما تو فخوااتیک زیاد عمل نه عمل که این شدن بعد از انتشار این علیزه، خود مانه 169 نصال 7, 169 نمیدونم شافی 223 نصال احمد نهند 241 اینا دیگه ترسیل گذاریشون واضح بود و از شد که چون در اون زمان از صحابه نبشتایی در دست نبود خواهی نخواهی تریفتیش اونا بسته بود محسوس بودم بسته رو جالی بکنن را را دیگه نبود جا را بیشتورن نوشتار صحابه دیگر چون نوشته ای نبود از صحابه من جور بودم یا آمد از فارن جیدم او این صده اون صده این طوری دست جا رجالی جایه. دیگه بعدانی از قرن سوم کاملا دیگه و نسیدیش هم این شد که از قرن سوم هم حسولانم رو به تصمیه یک تا صحیح مورده مختلف بود بعدش هم مختلف بود حالا این مثلا بخاری در طریقه این مبنای مسلمین نهبان اینه ای آخری از قرن سوم بون برم از تمام سه هاسته در, در قرن سه بون. یعنی از بخاری که مترفای 256 اتفا مسلم بردن 36 اتفایت تمام سه هاسته تهل سنده در این پاسند تمام بزرگانشون فاقه هاشون در قرن اول و دوم بیشتر قرن دوم اما محدثین بزرگ قرن سوم خصوصا قرن سوم قرن مهدسینه بزرگان بزرگان مهدسینه از بخارو احمده نه هم برد بگیره و لذا حالا من چندسویش شمس از کرده اینجا این نکش رو از رو کنم ما از قرن سوم اصطلاح از رو پیش ما آمد از مقابل مسلمان ذرا یکی از احتمالی که من دادن نگیدم پس دیگر چطور اصل مراد به باکلنی صحیح بوده تو چه اهل سنت نگیدم پس دیگر این احتمالی که بنده میگم چطور مولانا رو هم به تصنیف صحیح مثلا طبرباری اخر و به جای تصنیف صحیح گفتن این کتاب اصله احتمالی که من میگم که در مقابل اقدام اونها در تدوین صحیح اصحاب ما تغییر اصل کار بوده بوشن. احتمال احتمال دیگه احتمال دیگه هم هست کار در قرده. پس دقیق اصحاب ما چون مخصوصا تراسط امام سادر و امام واقع که چرا این وقت احرسان نداری جمانه اصحاب ما چون تراسط امام سادر و واقع و ابتدا از زمان امام سجاد این خود ساله هره تا سال سال پنجا موظم تولید علم شیعه در این زمانه روز هفته تا هشتان درسته در این زمان و موظم این تولید هم در گفت این مرزا روش هم درسته این مرزا در مدینه هست چیز خیلی مختصه ای که سال اسمش هم نشد مثلا بوده در مثل قمان قبطیش هم لفت علم معلوم نیست باشه بیشتر روایات شبایی بوده امدهی طولید ما اینجا وقت این برقصد فشار رو خاص خودش این علمی که در سال سال تدرین شد بین سال سال تا حدود در بردار با تصیص بردار پالایش و تصیب شد از سال دویستا حدود چار ست هم در, در دیگر تصیب شد از سال های تا با مکتب دوم بغداد این سه تا چهار مکتب اصلی ماست یکی کوفه است تبیید یکی مکتب اول بغداد مکتب اول بغداد جنبای منقولی خیلی داشت قمیتر فاخری ج مکتب بغدم که یکی است که اون جنبای منقولی فوق علاوه قمیه مکتب دوم بغداد که جنبای هم به اضافه شده چه طوری مراد از اردهنجو بیشتر کلامی اصل 320 تقریبا تا چهار و که از بغداد باشه این وضعی بوده که ما داشتیم اون وضع اهل سنت رو باید سهر کردن و این کتاب که در کوفه بود پس در بغداد پالایه شد طبعاً وقتی کتاب هست این کتاب مثال بخوان بگن معایت معمار این وقتی پالایه شد با که بود از کل روایت معایت معمار سی بیشتر بیس تا حدیثش تراصل نبی عمر یا سفوان یا دیگران یا در قوم هر دفعه بشه با هست اونها تدریجا اشته ها کتاب ها کم می شود. یعنی این کتاب های جدید می آمد از این نموذر عمر که شیش جل بود نموذر احمدر محمد ازمی ایسا که بسیار مرد بزرگ باریست انصافا کتاب های حسین سعی این یه مرحله بود که اطباعی ما پیدا کرد، خاوی نهایی یک مقداری اون مصادر اولییه رواج شب در قبل چهارم یعنی مکتب دوم بغداد در حقیقت میشه گفت و مکتب قم آخر مکتب قم دیگه خیلی متوجه نمی‌شه که تدوین نهایی شده سلسله تقریبا حدود در 80 درصد مثلا در کتاب کافی مقدار زیادیش آمد در کتاب تغذیب و آثار صدوق بارهای مقدارش هم مونده بود مرحوم شیخ طوسی اونها رو آورد داره بهش عمل نگرد نه هم ما در کتاب شیخ طوسی مقدار زیادی از دعوات حسین سعید میبینید که نه کافی از نهی از کتاب محبوب میبینید از کتاب انوار شاواتی که اله ماشاءالله از این کتاب ها روایاتی میبینید که در مصادر دیگر راه ما نمرده این یعنی تقریبا میشه با که 80 درصد روایات اصلیه است خوفه که شروع شد و بطره تقریبا در این قرن بکتر دوام وقت و قوم تقریباً تندیه و پالایش شد حالا با دیدگاه های مختلفی که بندشون وجود داشت لذا بعد از زمان شیخ سوسی ما داریم از ساقه ازیز خود 29 تا 30 تا 40 کتار رو نحب میکنه ازش استطرافه اینا کمه این نقطه شو در نظر گیرد و از اون محقق از وقت خطب نعمی میکنه خب کمه و, و خود محقق و گاهی هم هست مثلا علامه ایلا نسبت هم چمه یعنی شاید بیست در از باب اون وقت دقت بکنی خواهی نخواهی اصحاب ما چه در اول بردار و بعد در مختبه خوم و بعد در مختبه دوم بردا یه مسادر اولیه داشتن یک این مسادر اولیه را هم با یک وسواسی نسخه برداری کردن این خیلی مهم بود مثلا کتاب از دو نسخه داشتند. یه مسادر خوم یه نسخه احمد عشقی بود یه نسخه سرده دیارد برد مثل زمان ما نسخه در زمان مثل چاپ مثلا چاپ خوم چاپ تینا نمیگه مسئله خیلیمونه این بود مثلا کتاب حسین سریب، با این که نصدن نیر تغییر شده و خیلی هم مشهور بوده کتاب حسین سعید مثل کافی در زمان ماست سی کتابی حسین سعید دار معظاله ابن نوح به نجاشی دیگه پنجی دی مصخه از این کتاب من سراب دارم و تحکیل هم میکنه به نجاشی که این پنج نسخه رو به دقت براقار بکنه و یعنی بقیه انداز فهمه در جواب نشانشه ها رو به دقت بررسی بکن مثلا این نسخه بولا اون بعد هم یه نسخه یا چا اون باید. باید. رو یعنی گفتن روایت روایت اصلاحیه این روایت سره روایت روایت پنجم هم یه خیلی شاذه من بیشتر از این نظر بیشتر نشینم قابل احتمال نیست مول از از اون شخص نرفته از اون راوی اون نسخه نرفته بعد در این کتاب در اجازه ابن دقت نمی‌فهم چی شده خاصناوردین خاصه کتاب حالی. دو نسخه, داشت. محبوب. دو نسخه محبوب داشت کتاب عدن مأخوذ محبوب رو دو نسخه معروف داشتین نسخه این یکی رو خود ما ایشون از کتاب محبوب یعنی احمد محمد نیساری مأخوذ نسخه نسخه زیاد از این مأخوذ نسخه زیاد خود مرحوم یعنی دقیقاً این اختلاف نسخ اصحاب ما روی این نسخ کار کردن خب تقریبا با حذف اون نسخ اصلا مثلا منبال مثال ما در کتاب مستطرقات سوالت که گفت مدود تا کتاب رو اسم میبره شده که ایشون رسیده اصلا ایشون نصفه شناسی نمی هیچ میگه که این چه میگه مستطر از نام کتاب حریز این کتاب این کتاب باز اصلا محبوب نمیگه چه نصفی عزیزو محبوب عنوان نمید. مرحله اسم بازن مرحوم محقق در معاتبه میگه در تکار و بزنگی این طور آمده نسخه شناسی رو چه نسخه از بزنگی از خیلیش بوده در پس بنابراین این نسخه شناسی و کارهای زریف رو مثلا در قوم شخصیت بزرگی مثل ابن الورید که استاد سبوب در بعدها شخصیت های بسیار بزرگی مثل بزاری پدر مثل ابن, مثل ابن, مثل ابن مثل خود به اصطلاح تند اوقری انصاف هامن موسی بسیار اینها مردمان بزرگوار و شخصیت علمی و دقیق اینها واقعا خود همیری در قم عبداللهم جعفری یک شخصیت علمی دقیق کاملا شناسی تنقیدی داشت خب خانی نخواهی با گذشت زمان هم نسخه اولا این مدت این نسخه ها هم بودی ایسا همه بودی که علامه بند کرد این نسخه ها تاریخ داشتن قراعت داشتن در اختیار ابن قرار گرفتی چی در اختیار محقش اما گرفت برد داشته ای بر این چند هیچی نداره پس دقت این در فرن دوم از سالهای سال و پنجه به بعد اهل سنت چون نوشتار صحابت ها داشتن بود به رکیار آوردن اما شیعه چون نوشتار داشت، یعنی سال 150 145 بغداد رستان دیگه را افتاد بزرگان شیعه بغداد آمدن اونا هم هستن روی بخص و جلد چون اونا کتاب از اصحاب علمه موجود بود کتاب حیز بود کتاب مارکه نمون کتاب ها موجود بود لذا بزرگان ما و بعد تدریجاً این سنت حسنه با دینون رو کتاب ها کار کردن این اجازات مثل فهرست اجازه فهرست هم شده دیگه مثلا فلان کتاب رو اجازه دادن فلانی عزب معلوم قرار دادن اما اهل سنت خود نوشتار نداشتن اجازه میگن اون آهالی که این اعتراض رو برمی‌شور خودش اگر اینجور میگفت که اندامه هم در برنامه هشام وقتی شروع کرد دیگه کتاب ها موجود نبود. و چند در ضمن شیعه مثل در دوم او نوضیه فنی معلوم شد یعنی علامه وقتی آمد شروع کرد بخواد روایات رو ارزیابی بکنه دیگه کتاب ابن نبی عمره رو گفت متخره اینها موجود نبود لذا علامه درست همون راهی رفت که اهل سنت رفتن اون بحثی وجلی بود اگر اون آقایی که میده اینا راست هم دیگه. اون قرائم بیگه از بین رب اون قرائم و شواهد که الان بردشه از اینا تو قرد دوم و سوم و چهارم در موجود بود سنی ها نداشن اون وقت ما در برن هشتم که علامه آمد به تحریر قرار پردار باز دیگه اون بقول این آقای با قرائم به تحریر ما دیگه اون نوشته ها موجود نبود نتیجه اینه ان درست هم راست هم رو سن اون چهار فقریتی صحیح و ارزنده ده تا چی شد نتیجه این شد اگر مراد از مستشکل اشکال رو اینجور مطرح می‌کرد این اشکال وارد هست اشكال در حقیقت واقعیت ثابتی است یعنی اندام دیگه دستش کوتاه بود بیاد دو شناسی بکنه شاید مثلا استاد اشاره معاصر اشاره یا استاد این ده یه حدی قبل از اشامود مرحوم ابن طاووسیشون زیاد کتاب در اختیارش شده ما شاید مثلا بعد از مثلا زبان مصطفیان سیر و مرتضا و شیخ طوسی بعدا دیگه ما نداشته باشیم کسی این مقدار شاهنامه سنگینی مثل مرحوم ابن داشته باشه لكن در مه مرحوم ابن طاووس نسخه شناسیش خیلی بدون اصطلاح ما ظریفه نسخه شناسیش به اصطلاح این شاد بد نباشه مثلا بگه من دایید. کتاب سیان ابن قضال نرمونم کتاب سموم ابن قضال تاریخ اسمسان 275 تاریخ اسمسان حالا این رو کجا گرفته بلکی محروعه چی جور به اون رسیده یه اجازه آن میشون به شیخ توسی داره شیخ توسیان به کتاب داره از کنه خب این صافت ما قبل از سید بن طاووسا بعد از ایشان که مطلعن قبل از ایشان تا زمان سید منتظر کسی دارا چنین کتابخانه بزرگ و مفصل و متون اول حتی از اذه از, از کتب پیش سید ابن طاووس بوده در دنیا هستا که در اختیار شیخ طوسی هم نبوده و میگه تاریخ استنسا چون همه قبل از شیخ طوسیه خب کتابخانه معظمی باشه خود ایشون هم حتی یک فهرست مفصلی برای کتابخانه خودش نوشته علیوانه اما في تهرستی به کتاب و از واقعا کتاب خانه بزرگ بیداشت جای این نیست اما این کتاب خانه بزرگ اوی ارزش‌های های علمی ما بارد ارزش متاسفان چرا؟ چون اون نکات نسخ چناسی در آر اینا ارزش زرس نشوده تاریخ دارم نسخ تاریخ کتاب اینی همه خلاه همه نسخ هستن تاریخ کتابت تاریخ اما در اون کاری که ما کرده بود تاریخ کتابت تیبی تحصیل گذار خود ایشان هم خیلي هدیث شناس نیست مجموعه قرار که انسان نگاه به در کلماتش خود ایشان هم خیلي انسافا در این قضایا وارد نیست و دقیق نیست حقدی حق قا مثل مرهوم ابنازیس ابن, دیست. ابن دیست هم وارد نیست چون عبارت ابن ازیس اجمالا مرهوم سال و سالوازه بعضی از نکاس و همینجه به ابن در عبارت وسائل هست پس روشن شد اشکال در حقیقت اینه و اون این که شما اتباری ها میگید پس اون عبارات نجاشی از عبارات شیخ سوسی از عبارات کلهی هست این عباراتشون قرائن مراد از قرائن نسخ شناسی ها در اون زمان آسان بود نسبت هم این میگه قرائن بود قرائن از این را اما زمان علامه دیگه اون راه نمیشد اون راه دیگه جواب نبود نسخه نبود ساله به جواب موضوع بود خودو خودی علام که ما نگاه میکنیم میبینیم از آثار سرتاوس نعم میکنه کتابخانه سرتاوس زارشون چون مرحوم سرتاوس 664 وفاتشه علام 726 خب چطور احتمالاً یا کتابخانهشون بهشون نرسیده یا گم شده متأثر شده طرفنده شده به هر حال از همون نسخه هایی که در اختیار سرتاوس بوده علام از اونها نرسیده میکنه حالا چرا خاطرشون بهشون نرسیده به هر حال اون شو که مراد این آغاز شاید این باشه و درست این مطلب مطلب حقی یعنی این مطلب خودش حق پی نسته حد یعنی صحیحه این صاحبا این مطلب مطلب صحیح کار رو که الله در ربن هشتون شروع کرد علمای احسانه در ربن دوم شروع کرده بودن این راجعه به اگر مراد اشغال این باشه و اما جوابی که اخباری ها کردن بدن اون رو باید اینطور طور توضیح بدیم همینطور کنان عرض کردن علم های اهلستان از وقتی گیش رو پدر حدیث به استثناءی بعضی کهوهای صابقشون مثل ابو علیفه سریعا فقم متعصر به بحثای رکلانی شد متأثر به بحثای حدیثی شد و کهوهای بزرگشون مثل شافین ها متعصر شدن اشکال اینه که علامه در برنه که این کار رو شروع کرد خب ما حدوده حبتن فلم شیعه داشتیم ما نمازون را داریم که سنت رفتن انجام بیدادیم احل سنت اگر شروع کردن به تدوین همه ها رجالی و حدیثی و طبقات بعد از هم فلمشون نوشتن حالتی یه نادافت قبل بود عروبه اما خب شافری و فرس و احمد ابن همبر و از این زیادی از روزگانشون بعدها دارد حتی هنفی ها هنفی ها برد خیلی دید به نمه دقیق خیلی بردیشون واقعا زریع تو مواقع سشناخت حدیث وارد شدن این ساوی نصور رایه مال حافظ زیلعی زیلعی که از جزائر ایست نزی که به استاد جنوب و هحمه به فرق بردیم به این فرق احمه زیلع بازه و لام و این و یا زیلع این شخص <تص> سنی هنفیست انصافاً در تنقیح و تبیین احادیث و بحث رجالی و حدیثی بسیار کتابی نافذه فوق العاده کتاب نافع و مفیدیه و از بزرگان حنفی معاصر محمد زاهد خوسری شما واقعا یک متخصص حدیث مرده حدیث شناس بزرگ میسر کرده راستنمی خواهم وارد تو خود حنفی ها هم فی ما دی تو این قسمت بروز داده کردن این طور نیست حالا خود سر اولش ما بعدش قبل از این تقسیم بوده اما بوذگان اهناف هم تو این جهت ظهور پیدا کردند مثلا میگم اثر رکن خامون صحبت کنه در, در ابن خلدون که ابو الحسن یعنی حدیث درسه اهناف این اعتراض دارند بی خود اول میفرماید که و هر من یادم میاد که کتاب بذاری و صنایع کاسانی های بسیار خوب اهنفیاست بحث همه اما بر صعلی ها نداره اما بسیار کتاب نافعی در تفریعات پیش این کتاب خوبی از اهنافر هست. یام بیاید یک داشتن ا اگر حافظه من قرارنششا و چ کامپیوتر. این مخصوص هم برای که اهناه متهمان که اه لیث نیستن این چاپ داشت یه چاپی ای دارم که این نداره این شماره گذاری یه چاپی داشتن در نظر شماره گذاری کرده ولی کتاب به آات ده هزار حدیث رو در این کتاب ورددن جیوان در درجه. یعنی متخصص اسفاد میگن که ما ها هم دنبال مبنای این اتهام بیجاری شما زده شده که ما دنبال حدیثی هستیم و دنبال رأی هستیم دقیق این ماله گفت که بیشتر تمام به است دنبال حدیث نیست دیگه چه درست رأی نشه می شما از رو قطع شما هست پس در حقیقت اخباری‌ها این مشکل رو این حل خب بشه با شعار دادن درست نشه علامه وقتی این اصطلاح که مرتفیق نشینه بسته شده بود یعنی ما مثل شیخ محید داشتیم شیخ تروسی داشتیم پس که مثل شیخ صدوق داشتیم و مکاتب حدیثی ما مشخص بود روایات ما مشخص بود مقداری که عمل شده مشخص بود دیگه این اصطلاح تو قرنه هشت کم آمده خیلی کارساز نیست درد بودم چیم پس در حقیقت این منشأ دعوای این دو بزرگوار اینجا شدیم این در شد اخباری ها بیشتر آمدن برگردنن به اون قراهن اولیه این آروسی های کردن این کاری که علامه کرده یک ذرافت علمیت راست و ذرافت علمیتی بود راسته اما حل اون علمی علمیتی این نبود که ما استقلال درست کنم با استقلال حدش بکنم چرا؟ چون ما پنج غم شیش غنب تعلیفات داشتیم. حدیث داشتیم، فقه داشتیم، اصول داشتیم، اینطور نبود که الان ما هم از صفر شروع بکنیم. پس انصافاً یه مقدار اشکال اخباری ها وارد این اصطلاح، علاوه بر مشکل تاریخی بود و مصادر موجود نبود. و علامه به عنوان یک تغییر علمی میخواست برای ارزیابی احادیث رو بیاره به این اصطلاح جدید و سریع و حسن و اینها. این درست، این اجمالاً درست. اما این انصافاً قابل بیات و اهل سنت نیست چون اهل سنت تدوین فقه حدیثشون بعد از میشو گفتم بیات از سال 50 شروع شد به تدوین و بحث رجالی سه ها تمام قرن سومه یعنی یک قرن بعد از این سه ها شد مثلا تدوین سه بعد از شروع شدن به یک قرن خوب فکر میکنه؟ پس این با سرهشیعه نمی‌خورد. میان اخبارا میشه خلاص، نهجوراست خب، نمی‌رسه خوب بود. انصافش این مشکل داشت، یعنی اخواری ها نه این تصویری که ما مصاحبت‌ها، این تصویری که بچه‌گانه و خیلی غیر مناسب باشن این می‌سسن و همون روزی که علامه گفت به دنیا اومد بابا اینجوری. این مطلب بله این مطلب به نغری الیج اینه راسته. این مطلب باید تحلیل عمیق بشه. با اون این که شما این رو قیاد نگیرین اون قیاد درست نیست ما در وقتی اعظام درست تحلیل زن تحلیل جالی که ما پنج قرم از تدرین حدیث ما گذاشته بود از تدرین فقه ما گذاشته بود از تدرین اصول ما گذاشته بود رجال ما گذاشته بود فهارت از حام نبشه شده بود تمام اینا برزن تدرین شده بود لذا خواهی نخواهی کار علامه لذا اخباری ها این جهت رو خیلی گنده کردن روشن شد اخباری ها و راست هم میگن که بی‌دلغری اینطور نیست که ما بخوایم با استدلالی که در قرن هشتم بوده میراث های قرن سوم و چهارم، پنجم خودمون تغییر بدم خب نمیشه این کار کرد انصافا مشکل داره نمیشه با این میاری که بعد ها درست شده اون آثار قبلی رو انجام داد لیکن این به نه درست کردن. به اندازه خودش به تنهایی کافی نیست نه؟ اش... اشکال اخباری ها که وارده و نظام خود دیروزه هم خلالا به نه بودن هر را نرمه میکنه که ادری از متاثلی نه از باز مجبور شدن به اصطلاح قدم ها برگردن ایشون طوریه این باز مجبور شدن که همون که سیمونتر حدیث زعیف جابر میشه با عمل مشغول منجر میشه یعنی فوقهای بعد از علامه آمدن این حدیث طبقی مهیار رعیفه لیکن قدما حمل کردن گفتن منجبر میشه این حدیث صحیحه لیکن عمل نگردن گفتن منکسر میشه این جبار و این کساب رو مدرد گردن راست میگه مشکل کار از در اینجاست که اجمالا هر دو مطلب واقعیت داره ما باید با دقت و وسواس بتوانیم اون وصول به رو پیدا کنیم. اون راهی که شما به هر دررسید. یه روز چند تا بیانیه هم سوار شدن هستند که می‌ذارین فردا ان این, این مطلب رو توضیح بیشتری با در که مشکلات روزو به طریق قدما به تعمیر مرحوم صاحب و به تعبیر اخباری ها چه مشکلاتی وجود داشت که ما نمی‌توانیم الان به اونها مراجعه بکنیم یا مراجعه ما کم شده. پس یک مشکل اینه که ما به اصطلاح علامه برگردیم از بر کاری که علامه کرد، تا الان که من در خدمت شما تو ما جریان داره به خصوص اخباری نمی‌تونی مورخا رو که اخباری با مطلقا گفتن برگردیم هر راه مشکل داره هم این تغییر رجالی سر که علامه وارد شد این مشکل تو مشکل بسیار سنگینه داره این با یک میراث تنج قرنما نمی‌سازه قرن هشتم نمی‌تونه برای پنج قرنه گذشته یک مدار 6 قرنه ما کار این یقینی تنین درش نباید شبه بکنیم لیکن راه میرن که اخواری ها رفتن با این فندرگی هاشون و این قراهیمی که ملاشید کنیداشون بعد عرض بکنیم این را هم کافی میریم اینشالله هست که این دست قبل از باتشان در بحث کبرای اون جن قبر مطرح بکنیم که به اصلاح هرک شدی بشه اشتران به راهی که ما داریم و بعدم این مسئله شیور در محل خودش نبرایم